حکایت، سالی نزایی در پیادگان حجاج افتاد، و دایی در آن سفر هم پیاده، انصاف در سر و روگ هم فتادیم، و داد فسوق و جدال بدادیم، کجاب نشینی را شنیدم که با عدیل خود میگفت گفت، یه للعجب، پیاده آج چون عرصه شطرنج به سر می برد، فرزین می شود، یعنی به هزان می گردد که بود و پیادگان حاج بادیه به سر بردند و بتر شدند. از من بگوی حاجی مردم گزای را کو پوستین خلق به آزار می درد، حاجی تو نیستی شطور است از برای آن که بیچار خار میخورد و بار میبرد